فصل دوازده امام جواد علیه السلام ربایی ولادت امام جواد و حضرت علی اسخر علیه السلام با تو جهان یاباد رضا در بیت تو صد ولوله افتاد رضا میلاد جواد و علی اصغر آمد، شاد است حسین ابن علی، شاد رزا. دو بیتی شهادت امام جواد علیه السلام زسوز زه زهر دشمن دست و پا زد، میان حجر زهرا را صدا زد. لبانش چون لبان خشک ارباب گریز روزه را بر کربلا زد در مده امام جواد علیه السلام مولا جواد ابن الرضا باب المراد است بخشندگی کارش که نامش هم جواد است تا در حریمش میرسد هر قلب غمگین با دیدن صحن و سرایش شاد شاد است هر عاشق مولا امیدش هست اینکه او دستگیر شیعه در روز معاد است در شهادت حضرت جواد العیمه علیه السلام در هوشی در بسته در سن جوانی باب المراد از مادرش دارد نشانی از شدت زهراتشی بر جانش افتاد می گفت ام فضل آبی می رسانی دارد جگر می سوزد از این زهر ای داد در آن طرف کف هل با شادمانی بعد از شهادت بود جسمت روی آن بام بال کبوترها ترا شد سایبانی اما به جدت شد جسارتهای بیهد با سنگ و نیزه چوب و شمشیر و سنانی کشید او را دیگر این تن سر ندارد ده اسب را هم روی این تن میدوانی ده اسب را هم روی آن تن میدوانی